Thank you. لیامدان لیامدان پسر پادشاه پادشاهان ایرلند بود. یه روز که پادشاه برای شکار به بالای تپه رفته بود، یه اردک وحشی رو تو دره دید که با دوازده جوجهش به سمت دریاچه میرفتند. طولی نکشید که پادشاه پادشاهان متوجه شد، اردک به یکی از جوجه هاش حمله میکنه و اونو از جمع جوجه های دیگر دور میکنه. جوجه مدتی بعد برگشت و به بقیه ملحق شد اما مادر دوباره اونو روند و با منقار و بالهاش اونو زد. جوجه برای بار سوم اومد و به جمع بقیه جوجه ها پیوست اما مادر باز هم اونو ترد کرد. پادشاه پادشاهها با خودش فکر کرد که چرا باید اردک مادر جوجه خودش نک بزنه؟ برای پیدا کردن این سوال پیش پیر مرد دانا رفت. پیرمرد دانا گفت اردک وحشی دوازده تخم گذاشت روی دوازده تخمش خوابید و دوازده جوجه از تخم بیرون آمدند و حالا یکی از جوجه‌ها رو به دیچما داده دیچما یعنی یک دهم ده از محصول یا درآمدی که به عنوان مالیات پرداخت میشه جوجه ای که مادر از جمع دور میکنه به دیچما داده شده اگه اون جوجه رو به دیچما نمیداد نه خودش و نه بقیه جوجه‌هاش شانسی برای ادامه زندگی نداشتن پادشاه پادشاهان گفت خب من دوازده پسر دارم و از کجا معلوم که من هم نباید یکی از اونها رو به دیچما بدم؟ پیر مرد دانا گفت، تو هیچ شانسی نخواهی داشت مگر اینکه یکی از اونها رو بدی. پادشاه پادشاه ها به خونه رفت و همه چیز رو برای همسرش تعریف کرد. نه او و نه همسرش نمی که کدوم یک از پسراشون باید از خودشون دور کنن. اون روز تمام پسرها برای شکار، از قصر خارج شده بودند و پادشاه پادشاهانو همسرش تصمیم گرفتند پسری رو که آخر از همه از شکار برمیگرده از خودشون دور کنند اونا رفتن و دم دروازه منتظر برگشتن پسرا شدن از قضا جوانترین پسر لیامدان آخر از همه رسید و پدر در رو به روش بست پادشاه و ملکه هیچ کدوم از پسرهاشون رو به اندازه لیامدان دوست نداشتن و از اینکه دیدن او آخر از همه به خانه رسیده دلشون شکست اما نمیتونستن حرفشون رو زیر پا بذارن با وجود این اونو همون روز اول بیرون نکردند پادشاه به لیامدان گفت در بین تمام پسرام از دست دادن تو از همه برام سختره برا همین یه روز بهت مهلت میدم روز بعد پسرها دوباره به شکار رفتند و این بار هم لیام آخر از همه رسید. اما پادشاه باز هم دلش نیومد که اونو از خونه بیرون کنه. یه روز دیگه هم به اون مهلت داد. روز سوم هم, هم همون اتفاقی افتاد که دو روز قبل افتاده بود. باز هم لیام آخر از همه رسید. وگرچه قلب پادشاه به درد اومده بود اما بالاخره در رو به روش بست. پادشاه گفت پسرم، فکر میکنم تو پسر دیچما هستی و باید از خونه ترد بشی اگر رو به اندازه تخم چشمم دوست دارم اما باید راهی سفر در جاده دنیا بشی پادشاه یونان دوازده دختر داره که به تازگی یکی از اونا رو به دیچما داده اون دختر هم مثل تو آواره جاده دنیاست. اسم دختری که پادشاه یونان به دیچما داده برایت بوده اما از وقتی که از خونه رونده شده اون اسم اونا دختر دیچما رو رو خودش گذاشته حالا تو باید بری و دنبال اونا بگردی تا اونو پیدا نکردی و نجات ندادی به خونه بر نگرد لیام گفت قبل از اینکه دنبال کسی بگردم باید مادرم و ببینم و از او طلب دعای خیر کنم بعد به سمت نرده های قصر دوید و با یه پرش از روی اونا رد شد و وارد خونه پدرش شد و روی یک صندلی محکم نشست. بعد آهی کشید و سینه اون قصر بالا اومد که دندههاش هاش سخت حسادت رو تو سینه ترکوند و صندلی که روش نشسته بود شکست و اون روی سنگ فرش گرانیتی خونه افتاد. مادرش گفت دعای خیرم بدرقی راحت. از اینکه مجبوریم از تو جدا بشیم واقعا متاسفی چون تو از پسرهای دیگرمون استعداد بیشتری برای تبدیل شدن به یک جنگجوی بزرگ رو داری. ملکه سه کیک تهیه کرد، یکی با شیر سینه، یکی با خون گاو، یکی هم با زنبور اصل تخمیر شده. وقتی لیام داشت خداحافظی میکرد، مادر سه کیک رو همراه با دعای خیرش به اون داد و گفت در هر یک از این کیک ها یک پیروزی نهفته است، اونا رو به هر کی بزنی میمیره. لیامدان با خونوادش خدافزی کرد و جاده بزرگ رو برای یافتن اونا دختر دیچما یا همون برایت دختر پادشاه یونان در پیش گرفت. تمام روز رو راه رفت و شب وقتی خونه ای رو توی دره ساکت و خلبت یافت به طرف اون رفت. وقتی وارد خونه شد دختر جوونی رو مقابل آینه دید. دختر داشت با یه شونه طلایی موهاش رو شونه میکرد. اون سربندی طلایی روی پیشونی داشت که در تاریکی می درخشید. و سربند دیگه ای هم پشت سرش بسته بود لیام گفت درود بر تو دختر جوان دختر هم با همون کلمات به اون پاسخ داد و بعدش گفت فورا از اینجا برو تا ده دقیقه دیگه قول میاد و اگه تا اون موقع اینجا باشی تو رو هم از هم میدره و میخوره لیام گفت شاید نتونه چنین بلایی سر من بیاره ولی به هر حال محاله که از اون فرار کنم یهو قول وارد شد و گفت بوی یک ایرلندی شرور و دروغگو به مشام میرسه تو برای یک لقمه زیادی بزرگ و برای دو لقمه زیادی هستی نمیدونم تو رو تو دیک بپزم یا اینکه با پنج انگشتم تکه تکت کنم لیام گفت در اون صورت شاید هفت بار بدتر از حالا شوی ای رزل بیشرف بیا قبل از اینکه منو بپزی یا تکه تکه کنی با هم زورآزمایی کنیم و با تمامی قدرت و وحشیانه با هم درگیر شدند. اون جنگیدند که هر دو نفر خسته و فرسوده شدند لیان فاصله زیادی با شکست نداشت که به یاد کیک های مادرش افتاد یکی از اونا رو گرفت و به گول زد گول در حالی که داشت به زمین میافتاد کیک رو برداشت و تکه از اونو خورد به محض چشیدن کیک روبلیام کرد و با لحنی دوستانه به اون گفت من به تو درود میفرستم و خیر مقدم میگم ای پسر خواهرم مزه این کیک کاملا برام آشناست و حتما خواهرم یعنی مادر تو اونو پخته اگه تکی از این کیک رو روی زخم من بذاری تا درمان بشه هرچی بخوای به تو میدم لیام گفت چیزی نمیخوام جز اینکه به من بگی اونا دختر دیچمارو کجای یونان میتونم پیدا کنم گول گفت راستش من نمیدونم که کجاست اما دوتا از برادران بین اینجا و یونان زندگی میکنن و اگه پیش اونا بری شاید بتونن به سؤالت جواب بدن بیا این افسار قرمز رنگ رو بگیر و اونو جلوی در استبل تکون بده عصبی که همرنگ افساره به طرف تو میاد اون اسب تو رو پیش برادران میبره. لیامدان کاری را که غول گفته بود انجام داد و سوار عصبی که همرنگ افسار قرمز بود شد و حرکت کرد. هوا داشت تاریک میشد که به خونه قول دوم رسید. در اونجا هم دختر جوانی اسیر بود و درست مثل دختری که در خونه قول اول دیده بود، داشت موهاش رو با شونه طلایی شونه میکرد. لیام به دختر جوان سلام کرد و دختر با همون کلمه ها جوابش داد. دختر به او گفت که فورا از اونجا بره چون اگه قول برگرده و اونو اونجا ببینه معلوم نیست چه بلایی سرش بیاد. هنوز گفتگوی اونا تموم نشده بود که قول عصبانی وارد شد و به محض ورودش گفت بوی یک ایرلندی پست و دروغو به مشامم میرسه نمیدونم تو رو با دندونای بلند و تیزم پاره کنم یا تو دیگ بندازم و بپزم لیامدان گفت قبل از اینکه بگی چه کار میخوایی بکنی ببین چه کاری از دستت برمیاد. اون وقت به سرعت و با تمام قدرت با هم درگیر شدن وقتی لیامدان خسته شد به یاد کیک مادرش افتاد بنابراین اونو برداشت و به جایی میان دهن و چشمای قول کوب جوم رو شکست. قول موفق شد یه تیکه از اون کیک رو بخوره و به محض چشیدن اون دست پخت خواهرش رو شناخت و گفت به تو سلام می کنم و درود میفرستم ای فرزند خواهرم هر بخوای به تو میدم اما قبل از اون باید زخمم رو مداوا کنی. لیامدان کیک رو به زخم گول مالید و زخم بلافاصله خوب شد. بعد از اون درباره اونا دختر دیچما پرسید. گول خبری از اونا نداشت، اما اسبی به رنگ علف خشک به لیامدان داد و اونو به خونه برادرش فرستاد. لیامدان با این قول هم خداحافظی کرد و سوار بر اسب سفر دیگه ای را شروع کرد. چیزی به تاریکی هوا نمونده بود که به خونه گول سوم رسید. اونجا هم دختری اسیر بود که موهای درخشانش رو روی دوشش ریخته بود و اونا را با شونه طلایی شونه میزد. دختری سربند طلایی رو پیشونی داشت و در تاریکی برق میزد. سربند دیگه ای هم پشت سرش بسته بود لیام دوستانه سلام کرد و دختر با همون کلمات به اون پاسخ داد و گفت ای جوان زیبا و رشید فورا از اینجا برو چون قول به زودی بر و اگه تو رو اینجا ببینه معلوم نیست چه بلایی سرت بیاد هنوز حرفاشون تموم نشده بود که لیامدان صدایی شبیه خورخور شنید که نزدیک میشد نگاهی به بیرون انداخت و قول عظیم و جسه ای رو دید که با تمام سرعت و با چهره ای خشمگین نزدیک می شد با هر پرش یک تپه با هر جهش دو تپه و با هر قدم یک دره رو پشت سر می زاشت. او پنج سر پنج رشت مو و پنج گردن داشت تنه خشک شده یه درخ رو روی شونه و سبدی پر از جسد 500 نفر رو به دست داشت اون وحشتناکترین جانوری بود که لیامدان در تمام زندگیش دیده بود و با وجود شجاعتی که داشت از اون ترسید. گول به محض ورود گفت بوی خون یک ایرلندی پست و دروغگو به مشامم میرسه نمیدونم تو رو با یک فوت به دنیای شرق یا با دو فوت به دنیای غرب بفرستم تو برای یک لقمه بزرگ یا برای دو لقمه کچیک لیامدان گفت سخت نگیر پست فطرت قبل از اینکه بلایی سر من بیاری با هم میجنگیم و اون وقت مثل دو گرداب دو گاوه وحشی یا دو جنگجو به جون هم افتادند اونقدر جنگیدند که زمینای سفت نرم و زمینای نرم سفت شد و از سنگای خاکستری های آب خنک بیرون زد مدتی دراز به همین ترتیب جنگیدند بی که یکی بر دیگری غلبه پیدا کنه لیامدان تمام نیروش رو جمع کرد و به قول حمله ور شد و با اولین حرکت اونو به زانو در آورد در حرکت دوم کمرش رو به زمین زد و در حرکت سوم پوزش رو به خاک مالید و گفت اگه تا حالا به نصیحت مادرم گوش کرده ام الان هم باید همین کار رو بکنم اینو گفت و آخرین کیک رو برداشت و به دهن قول کوبید قبل از اینکه کیک به زمین بیفته قول تکی از اونو به دهنش گذاشت و گفت من دوست و حامی تو هستم ای پسر خواهرم، جونم و نگیر تا هر چی بخوای بهت بدم لیامدان گفت جونت نمیگیرم در صورتی که بگی اونا دختر دیچما کجای یونان زندگی میکنه و چه خطری اونو تهدید میکنه که نیازمند کمکه بول گفت با کمال میل بهت میگم اما بعد از اینکه منو از اینجا آزاد کردی اون وقت لیامدان به موهای قول چنگ انداخت و اونو از میان سنگهای خاکستری که تو اونا گیر کرده بود بیرون آورد قول گزارش کاملی از اونا دختر دیچما به لیامدان داد و گفت که آن سوی رودخانه یونان زندگی میکنه و مردم یونان اون شبیه که صبح روز بعدش اونا از خونه رونده شد بسیار غمگین و دل شکسته بودن همچنین گفت که یک مار دریایی غول پی داره میاد تا اونو ببلعه قول اونقدر خواهش و تمنا کرد که لیامدان شب رو اونجا بمونه که عاقبت اون پذیرفت اونا شب رو در سه قسمت سپری کردن یک قسمت رو به نقل داستان یک قسمت رو به نقل قصه های فینیان و قسمت سوم رو به خوردن و نوشیدن گذروندن. هر لقمه غذا مثل اصل شیرین بود و حتی یک تکه از غذا خشک و بیمزه نبود. میز و تا هم انباشته از بهترین گوشت‌های دانمارکی بود. سرانجام قول و لیامدان به رخت خواب رفتند و تا صبح به خوابی عمیق فرو رفتند. صبح که شد، لیام با اولین شعاع خورشید برخاست و لباس جنگیشو به تنش کرد. قول هم از خواب بیدار شد و سبونه را برای لیام آماده کرد و بعد نشانه جاده‌ای را که به رودخانه یونان میرسید به اون داد. قول به اون گفت که سه بلندی سر راهش وجود داره: تپهی از سوزنهای فولادی، کوهی از آتش و کوهی از سکهای درنده. وقتی لیام آماده ی حرکت شد، قول یه اسب و یه زین به اون هدیه داد. لیامدان با قول خداحافظی کرد و به همراه اسب که همرنگ موش بود، به سمت رودخانه یونان محل زندگی اونا دختر پادشاه یونان حرکت کرد. لیام ابتدا به تپه سوزن‌های تیز فولادی رسید. پای تپه به پهلوی اسب مهمیز زد و اسب با یه پرش عالی از روی تپه رد شد. بعد به حرکت خود ادامه دادند و طولی نکشید که به بلندی دوم رسیدند. کوهی که همه جاش آتش بود و آتیش داشت زبانه می‌کشید. اونا به سرعت نور از اون کوه هم گذشتند و حالا فقط یه بلندی در برابرشون باقی مونده بود. کوه سکهای درنده وقتی به پایین اون کوه رسیدند لیامدان دوباره با مهمیز به پهلوی اسب زد و اسب چنان پرش بلندی کرد که به راحتی از روی کوه پرید اما وقتی میخواست در سوی دیگه کوه فرود بیاد یکی از سکهای درنده پشت زانوی اونو گاز گرفت و دندونوی نیزه مانندش رو تو اون فرو کرد اسب به محض اینکه زخم رو احساس کرد فریاد بلندی کشید اما لیامدان که بطری کوچیکی از آب شفا بخش تو جیبش داشت قبل از اینکه اسب پا به زمین بذاره مقداری از اون آب رو روی زخم زانوی اون ریخت و زخم فورا درمان شد تا این لحظه دشوارترین بخش سفر طی شده بود اونا مستقیماً به سمت رودخونه یونان پیش رفتن مدتی بعد به رودخونه رسیدند و با یک پرش سبوک و عالی در طرف دیگر رودخونه فرود اومدن اونا به سلامت به پایان سفرشون رسیده بودند فرصتی نبود تا لیام استراحت کنه چون ساعت نزدیک دوازده بود یعنی ساعتی که مار میخواست بیاد و اونا رو ببلعه بنابراین به سرعت به کنار رودخونه رفت و اونجا اونا رو در حالی یافت که با زنجیرهای سنگین به ها بسته شده و منتظر بود تا مار بیاد و اونو بخوره لیام با دختر جوان آرام و معدبانه سخن گفت اما دختر غمگین و ملول بود و توجه چندانی به حرفاش نکرد. لیان گفت، ناراحت نباش دختر جوان، امروز اومدم تا در صورت امکان مار رو بکشم و تو رو نجات بدم. از اول سفر تا اینجا هر قدمی که برداشتم برای نجات تو بوده. دختر حرفای اونو جدی نگرفت چون فکر میکرد در دنیا جنگجویی نیست که بتونه مار رو بکشه. لیان کنار دختر نشست و به اون گفت که سعی کنه تا اومدن مار به خواب نره. طولی نکشید که دختر دید آب تا روی چمنها بالا اومده و به لیام گفت که مار داره میاد. لیام به کنار رودخونه رفت و وقتی مار از آب بیرون اومد با تمام قوا به اون حمله کرد. اون دوتا تا پایان روز با هم جنگیدند و با فرارسیدن شب، بالاخره لیام تونست با یک ضربه نیمی از صورت مار رو قطع کنه. مار برگشت و به درون آب رفت. صبح روز بعد لیام دان با ابزار جنگیش دوباره به ساحل اومد و وقتی سر سرکله مار پیدا شد با شدت تمام به اون حمله کرد. اونا از صبح تا شب با هم جنگیدند و وقتی روز داشت تموم می لیام ضربه دیگه ای به مار زد و گونه دیگر او رو هم قطع کرد و مار دوباره به درون آب برگشت. صبح روز بعد وقتی لیام به ساحل اومد جمعیت زیادی اونجا جمع شده بود، خبر به سراسر سر کشور رسیده بود که یه جنگجو به نبرد با مار بلند شده و روز قبل از اونا در برابر اون مراقبت کرده. و اکنون مردم جمع شده بودند تا جنگ اونا رو تماشا کنن. مار یه بار دیگه از آب بیرون اومد و لیامدان به جنگ اون رفت نبرد دوباره آغاز شد و لیام تا غروب خورشید وقفه به مار حمله کرد. درست زمانی که خورشید داشت غروب میکرد لیام شمشیرش را از پشت کشید و، با تمام قوا به نزدیکی دهن مار بین فک و گردن ضربه‌ای زد و با همون ضربه سرش و قطع کرد این ضربه کار مار رو تموم کرد و مردم یونان به ستایش از جنگجویی پرداختن که اونا رو از مرگ دردناکی که در انتظارش بود نجات داد. مردم سعی کردند لیام را پیش خودشون نگه دارن و اونو به دربار پادشاه ببرند. اما لیام از پیش اونا رفت. وقتی لیام سوار بر اسب از کنار اونا میگذشت، دختری که از کفشای اونا از پشت در ورد و با خودش به خونه برد. مردم به همراه اونا به دربار پادشاه یونان رفتند و اون شب رو در آنجا به شادی و شادمانی گذروندند. چون مار کشته شده و برایت از مرگ نجات پیدا کرده بود. برایت اعلام کرد که با هیچ کس ازدواج نخواهد کرد مگر مردی که آن کفش اندازه پایش باشد بنابراین سربازا به همراه کفش فرستادند تا صاحب اون پیدا کنند. و چه زیاد کسایی که پاشون بزرگ بود و برای پوشیدن کفش انگشتای خودشون رو بریدن سربازان آقابت لیام رو پیدا کردن اون هم باید مثل دیگران کفش رو امتحان کرد. وقتی پاش براحتی در کفش جا گرفت اونو به دربار پادشاه بردند. وقتی جنجو رو پیش پادشاه بردن پادشاه از خوشحالی در پوست خودش نمی‌گنجید. لیام و برایت همانجا ازدواج کردند و جشن عروسی آنها هفت روز و هفت شب ادامه داشت در حالی که میهمانان پیاله های اصل می همه قضاها تعم اصل داشت و هیچ قضای و مزده نبود بعد از عروسی لیام به همراه اونا به کشور خودش برگشت استقبالی که پدر و خانواده لیام از اون کردند، هفت برابر بیشتر و گرمتر از استقبالی بود که پادشاه یونان به خاطر نجات برای تعزو کرده بود. به افتخار اون جشنی ترتیب دادند که هفت روز و هفت شب ادامه داشت. میزها انباشته از بهترین غذاها و جامهای اصل بود. گوشتها رو دندونهای محکم میهمانها می و استخونها رو دندونهای انبوه سگها. من و خونوادم هم اونجا بودیم. اونا به کنار رودخونه رفتند و من به کنار برکه کوچیک. اونا غرق شدن اما من زنده موندم. خدا کنه بلایی که امروز سر من اومد فردا شب سر شما نیاد. اما اگه هم اومد خدا کنه جز دندونای عقبتون چیزی رو از دست ندید. پایان. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها. حبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادوی باشکوه و, و مهمانی های بزرگ شاهانه بسههایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده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 هدساین مهران دوستی